دوستان کار دشواری است آخرین سخنران بودن و کار دوشوارتریست است بعد از شنیدن سخنرانی های نض و شیواری دوستان و سخنانی که رددو بد ودر شد دادم بخواد حرف بزنه. من آنچه که میخوام خدمتون بگم شد سادش بخوام بکنم توی دو بخش بشه گنجوندش این دو تا رو. در واقع برایت استحلال کنم از ابتدای کار بگم یکیش در مورد در واقع یکیش در مورد مسئله است در مورد پرسشه در مورد آن چیزیه که ما وقتی در مورد نوروز حرف میزنیم در مورد در مورد نوشدن هستی وقتی صحبت میکنیم مسئله ای که ترح میشه شکلی که صورتبندی شده و تاریخ تمدن ایران به نوروز و به بهار به عنوان به مسابه یک مسئله به عنوان یک چالش به عنوان امری که باید توضیح داده بشه یک مسئله اینه یک بخش سخن من این است که چگونه ما در واقع مسئله پردازی کردیم چگونه صورتبندی کردیم آن چیزی رو که بهش میگیم نوروز بخش دوم سخن من در مورد راه برده است این مسئله به هر صورت به شکل حل شده و به شکل ما اندوخته فرهنگی بر مبناش تولید کردیم اما پرسشی که بعدش باقی میمونه اینه که این اندوخته امروز در حال حاضر وقتی که ما داریم با هم دیگه سخن میگیم به چه شکلی کار و چگونه باید روز بشه من خاطرم هست چند سال پیش بود که توی مراسمی شبیه به این مروض به جشن و همین جمع دوستانه خودمون یه پرسشی قرار صحبت بکنم پرسشی مطرح کردم و خیلی فرصت نشد که دیگه ادامه بدم و به پاسخش بخوام برسم اون پرسشی این بود که چرا ماه نخست سال یعنی اون ماهی که روز اولش نوروزه چرا فروردینه شما اگر حالا این این طرف اون طرف هم چند بار گفتم اگه تکراریه من ببخشید ولی آغازگاه خوبیه برای آنچه که میخوام خدمتون بگم ابتدای سال اگر شما ماه های سال ایرانی رو نگاه کنید مثل خیلی از سرزمین های دیگه اسم ماه اسم موجودات مقدسه یعنی یا اسم ایزد ایزدان پیش زرتشتیه یا اسم فرشگان زرتشتیه یعنی به عنوان مثال خدمیتون بگم آبان که آن است یا آذر که همون آتور قدیمه یا مهر اینهایی زدانه پیشا زرتوشتی هستن یا امرداده یا خورداده یا اردیبهشت اینها فرشتگان هستن موجودات قدسی هستن آنهایی که زمان ما رو زمان سالیانی ما رو تعیین میکنن منطقی یکی از اینها خیلی جالبه که هیچ کدوم از اینا نیست یعنی فروردین که است که به فروشی فروهر فراوهر یعنی روح یعنی روان به انسان مربوطه آن چیزی که به روح و روان انسان مربوطه جالبه که اولین ماه ساله جالبه که مربوط به در واقع نوروز میشه و نوروز در ابتدای کار آره پیر دماغم فقط فرو نکنید آره خوب هلا <تص> ولی پرسه چی که در واقع باش رو به اینه که چگونه ما ماه اول سال رو گذاشتیم ماه فروردین برای که به این پاسخ بدیم من یه چند تا زمینه اطرافش بگم خدمتتون. یک این که نوروز یکی همونطور که استاد محترممون فرمودن نوروز یک آین گذار است. نوروز خودش مثل یک امر آخر و زمانی میمونه یعنی در واقع یکی از کارهایی که ما توی اساطیر مربوط به زمان خودمون انجام دادیم اینه که تاریخ هستی رو روی تاریخ شمسی، تاریخ خورشیدی سال سوار کردیم. ما در واقع توی تاریخ اساطیریمون هزار سال داریم توی منابع قدیمی که کل تاریخ هستی رو میسازه از ارتدای آفرینش تا انتهاش که خداوند و شیطان با هم دیگه جنگم و در نهایت خداوند به خاطر خیراتمندیش و نیکیش قلبه میکنه بر شیطان. توی روایت‌های قدیم ایرانی 12000 ساله، و هر هزار معادل یک ماه و سال در واقع یک الگویی است یک شکلیست از آن اتفاقی که در سراسر هستی قرار بیفته داره یه چیزهای کوچکی من نوشتم به زمانی در مورد اینکه اینها خیلی قابل خواندنن یعنی شما میتونید اون وقت جشن‌های ماهانه جشنهایی که تا یه سال ایرانی‌ها میگرفتن رو بگید که چرا فلان جشن اسمش اینه و چرا فلان موقع است چرا که در واقع این, یه این یک کپی است یک در واقع بازنویسی است از تاریخ هستی که ته یک سال شمسی اکران شد موقع که این شکلی شما نگاهش می بینید که نقطه شروع و اون نقطه تعیین کننده یعنی نوروز توی تاریخ هستی اگر نگاه کنید میافته به اونجایی که بهش میگن فرشگرد قیامت یعنی در واقع جهان اون تاریخ هستی به سمت زوال و آشوب و بی‌نظمی پیش میره و در نهایت موقعی که همه چیز در بدترین وضعیت خودشه یه دفعه اوجا خوب میشه و یه جهشی رخ میده و همه چیز به بهترین شکل در میاد عین زمستانی که در اوج خودش یک دفعه فرو میشکنه و نور و گرما کم کم قلبه میکنن برش و نوروز میرسه و سال جدید شروع میشه که با بهار که باشه گفتن که با زنده شدن دوباره جهان مرده همراه و این چیزی که داریم ازش حرف میزنیم نکته جالب اینه که با یک انسان ممکن میشه انسانی که فرشگرد انسانی که قیامت رو ممکن میکنه انسان از اولش اینطوری بوده یعنی چه در سنت پیشا اسلامی ایران که سوسیالیست نجات بخش قرارو چنین کار رو انجام بده یک انسانه چه در دوران بعد یعنی ایرانیان اکنون که شیعه هستن هم بعضی که انسان قراره فرشگرد رو بیاره و دوستان فرشگرد کلمش فرشو کرد در عوستایی فرش همون کلمه که تو انگلیسی هنوز باقی مونده یا تو فرانسف خش هنوز باقی مونده نو تازه تر و تازه و کرت کردن یعنی آفریدن کردن آفریدن نوی آفریدن تازگی هستی تازه میشه هستی نو میشه با انسان هستی تازه میشه برای اینه که اولین سال اولین ماه سال فروردین اسمشه برای اینه که علامت اولین ماه سال روان آدمه و برای اینه که روان آدم ها میاد و برای اینه که خونه تکنی میکنن مردم و برای اینه که هفت میچینن چون مهمانی است که روان در گذشتگان هم درش شرکت میکنه برای اینه که لباس نام میپوشن هفت سین ما اناسار آینی که داریم همش مربوط به آینه بزم ارواهه اگر بخواه نستور شناسن بهش نگاه کنیم خب چرا همچین اسطوره ای در ایران اینقدر ریشه داره اینا رو میشه پرسید دیگه چرا نوروز در ایران ریشه دار شد چرا نوروز ادامه پیدا کرد چرا همچنان بعد از اینکه تلاش های فراوانی شد برای اینکه توی آسیای میانه نوروز رو ریشه‌کن کنن دوره شوروی کمونیستات توی پاکستان و شمال هم سعی کردن ریشه‌کن کنن این رو انگلیسی ها اون موقعی که دوران استعمار بود چرا باقی مونده چرا انقدر ریشه داره توی این منطقه چرا هر چی که میگذره شما میبینید که قنیتر و فربهتر و پیچیده‌تر میشه این آین حتی موقعی که مدرنیتی که الان حرفشو میزنیم من وارد شده، همچنان شما میبینید که این اقبال عمومی بهش هست و اندیشیده میشه از نو، مجدد آین های مربوط به نوروز. چرا شده اینه؟ من اینه که نوروز یک روایتی هست همونطور که فرمودن، یک قصه ای است بسیار کهن که من وارد ریزه‌کاریاش نمیخوام بشم، در واقع اینطوری خدمتتون بگم که ترین استوره مربوط به سال که ما توی قلم روی ایران زمین داریم یه است. شکل اولیش هم سومری بوده ما الان نسخه اکدیش رو داریم اینو ما الیش بهش میگن انما ما الا زمانی آن بالا همین شبیه زبان عربی و عبری که الان به کار میره اکدی البته این نسخه قدیمی شه روایت اینو ما الیش قدیمی نشه و مربوط به همین آینیه که ما الان بهش میگیم نوروز و این ادامه پیدا میکنه و میاد شما کلی متن دارید نروزنامه منصوب به خیامو بگیرید تمام موتون مهمی که ما داریم توش نوروز هست چه شاهنامه باشه چه نظامی باشه چه سعدی باشه توصیف هایی که از نوروز دارین اشاره هایی که به نوروز شده نوروز آمدن نو شدن روز نو شدن جهان و نو شدن انسان دارید در ادبیاتمون متراکم مداومه و لایه لایه پیچیده‌تر میشه توی تاریخ جلوی چرا اینطوره چرا این شکلی صورت‌بندی شده؟ خب همه کشورها، همه تمدنها سال نو دارن دیگه. همه بالاخره موقعی رو برای گردش سال نوشون تعیین میکنن حالا ممکنه مثلا کریسمس باشه که الان جهانگیرم شده با مدرنیته، ممکنه های دیگری باشه، چینیا چیز دیگری دارن، هندیا چیز دیگری دارن، نمی‌دونم آمریکای جنوبی قدیم چیزای دیگری داشتن. چرا نوروز؟ چرا نوروز که اینقدر اخترشناسان است؟ چرا نوروز که اینقدر به تحویری میشه گفت علمیه اینقدر محاسباتیه اینقدر ریزه و چرا نوروزی که رمزگزاریش اینقدر عجیبه رمزگزاریش مربوط میشه به تاریخ هستی که انگار فشرده شده در یه زمان کوتاه مربوط میشه به انسان مربوط میشه به تصویری که ما از انسان در هستی داریم گمان من آن است که ما مثل خیلی از اساتیر دیگه در استوره نوروس هم با یک مسئله بنیادی که جوام انسانی باش دست به گریبانن سرکله داریم میزنیم استوره هم یکی از کارهای مهمی که انجام میدن اینه که یک چیزی رو توضیح میدن آنچه که وجود داره رو توجید میکنن به من میگه استوره که چرا فلان چیز این شکلیه چرا جهان این شکلیه که الان هست چرا نظم اجتماعی که من میبینم اینگون است که هست چرا من آنچه که هستم شدم از کجا اومدن من به کجا میرم من چرا آنچه که هستم هستم و چگونه چر... باید باشم اینا رو اساتیر توضیح میدن یکی از چیزایی که اساتیر توضیح میدن من فقط روی نقطهش میخوام اشاره کنم چون میخوام یه راه امروز پیشنات کنم اگر فرصتی باشه یکی از کارایی که اساتیر میکنن اینه که رابطه میان دو قطبی داد و بیداد رو توضیح اسطوره نوروز مشخصاً یک اسطوره مربوط به نو شدن هستیه و این نو شدن هستی وقتی پای انسان در میانه یک امر جامعه شناختی دیگه یک امر سیاسی حتی دیگه یعنی شما موقعی که دارید در مورد نو شدن هستی از به این شیوه که ایندرا گرزش رو به زمین میذاره مثلا یه روایت این شکلی ایندرا در هندیزد طوفان و آشوب جرویه و این در تاخت و تاز میکنه بر طبیعت و این دره در در مقطه خسته میشه و به قار خودش برمیگرده و دوباره در واقع آرامش به زمین برمیگرده و این میشه اول سال نو که علوکاری نداره رفت به نوروز هم نداره رفتی به بهار هم خیلی نداره ما ما در دوران جدید متصلش کردن اینا یه تصویریه دیگه بالاخره هم یه روشی برای سال نو یا زمانی که ناجی زاده شد کریسمس زمانی که ایسای ناصری زاده شد حالا کاری نداریم که احتمالاً در سال 4 پیش از میلاد مسیح زاده شده بلاز تاریخی غلط تاریخی که داریم کاری نداریم که روز و ماهش اصلا معلوم نیست و از قرن چهارم به بعد تصویت میشه اینی که الان داریم چهارم میلادی به بعد کاری به اینش ما تا یه رخداد تاریخی یا یک روایت اساطیری میتونه سال رو تعریف کنه دیگه ما چرا نوروز رو به این شکل در این بافت تعریف کردیم همان من این است که یکی از دو قطبی هایی که باز تأکید کنم یکی از دو قطبی هایی که نوروز توضیح میده چون چیزهای دیگ هم درش هست و خیلی لای لایه است یکی از چیزهایی که توضیح میده اینه که با بیداد باید شکرت با آن چه که ناخوشاینده با سرما با زمستان با آشفتگی با آن که بده با آن که نمیخواید باید شکرت دو چیز رو به ما میگه یک این که با نزمی طبیعی ایداد به داد تبدیل میشه کرد اینه دیگه فرشگرد آن از که انسان نجات میده هستی رو انسان میتونه هستی رو نو کنه بهار میاد چون انسان هست بهار میاد چون انسان نو میشه انسان میتونه خودش رو نو کنه انسان با نو, نو کردن خودش میتونه هستی رو نو کنه امکان نوسازی هستی در امکان نوسازی سازی انسان نهفته است انسان اما تکیگاهی که داره برای نو کردن هر چیز خودشه انسان ابتدا انسان رو میکنه، من ابتدا من رو تغییر میدم و من اگر من رو درست تغییر بدم هستی هم در اطراف من تغییر میکنه و فرشبگرد کلمی اصلیش اینه یعنی فرشبگرد نو شدن منه خلق مجدد منه خالقی است که خودش مخلوق خودش اگر از این زاویه نگاه کنیم دو ماجرات داریم یه ماجرات پیامد طبیعی چرخش فست هاست. نمی پاید تاریکی نمی پاید مهرگان که شروع در واقع سرماست به شب چله منتهی میشه تاریک ترین شب سال ولی نمی پاید از فرداش رو روز شروع میکنه به طولانی شدن سرما نمی پاید دی که اسم ماهش اصلا دی یعنی دیف اسم ماهش ماه تنها ماهیه که اسمش اسم پلیدی است مقدس نیست کلمه دیو البته قدیم به معنی خدا بوده ها مون تا این که ما داریم مثلا به صورت فوشو فارسی الان یکی مشققتش به کار میره دی یعنی دیف و ماه سردیه و تاریکه و تویش ادبیات اگه نگاه کنید تنها ماهیه که خیلی منفیه سرمایه دیجور شب دیجور نمونهای اینطوری خیلی داریم دی مونتاین میشه به بهمن که ماه کلمش کلمه خیلی خوبیه اندیشه نیک منتقی میشه به اسفند که خیلی معنی داره و میشه نوروز بعدش یعنی نمی پاید، نه تاریکی پاید، نه سرما میپاید این جمعه طبیعیشه اما یه نکته دیگری درش هست و اونم اینه که یک سوی انسانی هم داره این قصه یعنی نه تنها طبیعت در نقطه عطف ناخوشایند خودش قرار نمیگیره و به شرخش در میاد و ادامه پیدا میکنه بلکه یک نیرویی این رو تسریم میکنه یک نیرویی به این سازمان میده نظم میده بهش یک نیروی این رو معنا میکنه آدم اینو معنا میکنه منها این رو معنا میکنن انسان این رو معنام میکنه برای اینکه ماه ماه فروردینه ماه ماه اسم یه نفر نیست ماه اسم ماهمون رو ببینید ماه ژانویه یانوسه اسم ایزادت اجازه میدونه دیگه دو چهره رومیه آگوست یا اوت ماه اوت یعنی امپراتور آگوستوس اولین امپراتور رومه هو هم اکتویانس مشهور که قصهشو احتمالاً میدونید با آم چیز آم... آنتونیو کلوپاترا و اینا میجنگه خیلی قصهشو شنیدین همین امپراتور میشه اولین امپراتور رومه لقب خودشو میذاره آگوستوس و ماه آگوست از اینجا اومده دیگه اسم ماهه لقب یه آدمی بوده توی تاریخ لقب یه شاه بوده لقب یه امپراتور بوده ما چرا فروردین میگیم. میگییم؟ چرا اسم یکی از مقدستان شخصیتها داریم دیگه؟ چرا اسم آدم و رو نذاشتیم روش چون فروردین روان همی آدم هست. چون همه آدم است چون فروهها رو همه دارند مالی یه نفر نیست همه نو میکنن هستی رو همه میتونن نکنن هستی رو؟ این که تا اینجا ای کار گفتم دوستان شکل ماجراست مسئله یه که سعی شده حل بشه در نوروز شاید اما یه ای که توش وجود داره اینه که این رو من برای این میخوام روش کنم که این دو قطبی این گذار از بیداد به داد این تحول امر ناخوشایند به امر خوشایند، این گذار از زمستان به بهار این نوشدن هستی که با نوشدن انسان هم رو این اتفاق بزرگ این نقطه عطفی که دارم ازش حرف میزنم یه چیز خیلی جالبی داره و اونم اینه که خشن نیست ببینید من, من پراتز اینجا باز کنم روایت های مربوط به نو شدن هستی کلن همه جای دنیا اینطوره تو ایران خیلی غنی و شفاف این چنینه؟ سه تا روایت هستی ما داریم چگونه بیداد به داب تبدیل میشه چگونه فصل برد به فصل خوب تبدیل میشه سه تا الگوی کلی داریم یک الگو الگووی جگرایان است یه چرخههایی از پیش تعریف شده ای داریم خود به خود اینجوری میشه ا آستک اینطوری بودن گفتم 5 سال یه باری آتیی سوزی بزرگ میشه حتمانم میشه یه کاری کرد. حتمانم بعدش می شرخه دوباره اوضاع خوب میشه یا روایت هندی همچنینه یه سری شما دوره داریم یگرداری حال الان ما تو کالی یاگر هستیم دوره در بالا سیاه هستیم یکیش با آب یکیش با آتش یکیش نمی‌دونم با طوفان ورکوم از ایننه با یه شرخه ای که جریز که آدم درش کار نیست می شرخه به اونیکی. تبدیل میشه این یه الگوه یه الگوه دیگر ما داریم که جنگ آوران است که می جنگن یکی با یکی می جنگه یکی برای که پیروز میشه چرا باران میاد بعد از فصل خشکسالی چون که در آسمان تیشتر بر اپوش چیره میشه یک فرشته ای هست به نام تیشتر که ابر باران یک دیوی هست به نام اپوش که دیو باران دیو ابر ابتر ابر سیاهیه که باران ازش نمیاد دیو خشکسالیه و این شبیه اصف زیبایی اون شبیه اصف جنده بیریختیه و این بر اون قلبه میکنه و بعد شما مثلا تندر که میشنوید صدای نعره اپوشه مثلا. این هم یه روایت جنگه اهور آمزده و با هم می نه؟ خداوند و شیطان با هم میجنگن، فرشتگان و دیفا با هم میجنگن. یک روایت دیگه روایت جنگیه یه روایت دیگه داریم که این روایت خیلی جالبه این سومیش مورد نظرمه اینم بهتون بگم که نوروز هر سه تا اینا رو داره ها. نوروز هم یه امر تزویمی هم یه ماجره جنگی داره شخ میده همین که این سومی داره هست است به نظرم بیشتر در ایران پرداخته شده حتی شاید بگم روایت اساسش ایرانی است از ایران جای دیگه رفته روایت سوم مهره روایت سوم عاشقیه یه جوره دیگه ممکنه تغییر کنه این دیگه جنگی نیست این با مهره و برای اینه که در اساتیر مربوط به فرشگرد مربوط به آخر زمان مهر خیلی مهمه تو اساتیر پیشا اسلامی مهر داوره اصلا اهورامزوهری منه مهر تعین کننده اصلا اون انسانی تا آخر میاد جلوه مهره حتی تو روایتهای خود مهره به خاطر اینه که ایسا مسیح که نجات بخش ناجیه بلاظه فرم با مهر یکی شده در روم یعنی شما سنتی که آینی که الان آین آینه پرستی رومی و آینه کلیسای کاتولیک تقریبا بلاظه فرم یکیه ریخت یکیه حتی عناصر نمادینش هم خیلی شباهت دار این سومی مورد نظرمه من میخوام بخش دوم حرفم رو که خیلی کوتاهتره و سرتونم نمیخوام خیلی درد بیارم من تا تو بخش دوم میخوام خدمتتون بگم الان نیاز داریم به این سومی وقتی خدمتتون بگم که ما الان در دورانی هستیم مثل همه دورانهای تاریخی این که دارم میگم همیشه بوده همیشه یه چیزای زشت در دنیا یه چیزای خوبه آدم خوشش میاد همیشه یه سری داد بوده یه سری بیداد بوده همیشه یه سری اتفاقای خوب میافتاده یه سری اتفاقای بد میافتاده شما توی تاریخ نگاه کنید من توی اون کتاب چیز اینا رو جمع کردم توی اون کتاب داروشه دارگر یه فصلشم کردم در مورد فقط ایران شما تاریخ رو نگاه کنید از دور افلاطون تا الان یه سری هستن میگن ایران در حال انهتاته و یه تمدن 25 قرنه در حال انهتاته مگه میشه همچین چیزی تر از همه اتمدانه دیگه یکی ما مشناسیم خب پس انهتات نیست دیگه ولی یه چیزایی طرف میدیده خوشش نمیامده میگفت آها این علامت انهتاته ما الان میگیم دیگه خب یکی از شکل های تفسیر کردن آنچه که ناخوشاینده و تبدیل کردن آنچه که ناخوشاینده به آنچه که خوشاینده یکی از شیوه های نگاه کردن به آنچه که بیدادگرانه است و دگرگون ساختنش به آنچه که دادگرانه است مهره معنای فلسفی کیمیایی میمونه شاید به این خاطر که مهر توی تمدن ایرانی انقدر مرکزیه شاید به این خاطر که مهر در تمدن ایرانی اسم ماه هسته مرکزی عرفانه اوستخانبندی ادبیاتمونه دینمون اینجوری تعریف میشه مردم اسمشون مهرداده من امروز دوست عزیزمو دیدم که انسانه با هم دوستیم اسمش مهرداده مهر انقدر رایجه مهر انقدر مهمه توی تمدن شاید به این دلیل که مهر کار مهمه میکنه و تو آینه نوروز میبینیم تو آینه نوروز یک تراکم، یک مرتصل شدن رو میبینید. خود همون سرماس که میاد و به بهار تبدیل میشه. خود همون مردگان که بر سر سفره زندگان و سبز سبز میشه زندگی دوباره به وجود میاد. مهره که آن که زد رو با هم دیگه میتونه ترکیب کنه و یه چیز از توش در میاد. تاکید من به این خاطره که امروز ما که داریم با همگی حرف میزنیم بیداد و امروزشت متاسفانه متاسفانه با نفرت ترکیب شده و طبیعیه که بشه طبیعیه که من وقتی از یه چیزی بعدم میاد خشبین بشم در موردش طبیعیه که متنفر بشم از آن جایی که داره جلوه این عمر ناخوشایی به بنا نشون میده اما میخوام دوستان بهتون بگم که یه زمانی بود ما ایرانی ها معتقد بودیم که خیلی از این چیزهایی که همین الان هم به شکل علمی بیان میشه ما معتقد بودیم عواطف و هیجانات آسیب زننده آنچه که خشون تولید میکنه دیون. مثلا شاید درتون جالب باشه خشم کلمه خشم به مععلم به کار میبریم این کلمه تو شکل قدیمش، ععش شکل عستایش، اشما یا خشم و خشم تو پرولبیش یعنی خشم دیو این اسم دیوه یعنی آدما معتقد بودن وقتی که خشم میشن گاری دیو رفته تو تنش. و ترس یک دیوه و آز یک دیوه و هر کدوم از اینا رو که نگاه می‌کنین هر کدوم یه دیوان داره این یه ای جمله خیلی زیبا هست که میگه اگر شما دیو رو از یه ای جمله مال بندهش نه این جمله میگه اگر همه آدم‌ها احلمن رو دیو رو از ذهن خودشون بیرون کنن دیو نمیمونه دیو بیرون نیست اصلا دی فقط توی ادماست تو ادمه که میپروروننش راه خارج کردن دیو نگاه کردن به دیزه راه خارج کردن دیف به رسمیت نشمردن دیوه یعنی اگر من از چیزی ناخوشایند دلگیر بشم اگر چیزی برای من نفرت انگیز باشه و من نفرت نشارش کنم اگر من از چیزی خشبین باشم و خش پولید کنم در موردش من اگر خشونتی ببینم و خشونت درست کنم در مقابلش نمیخوام به طور مطلق من حرفی که دارم بزنم اصلا مطلق نیست و اصلا نمیخوام یه اخلاقی وضع کنم ولی میخوام به یک حکمتی اشاره کنم که توی تاریخ ما باقی مونده که استوری نوروز ما رو این شکلی کرده فقط وسوری نوروز نیست، وسوری مهرگان هم است. شب چهلمون هم است. خیلی از اینایی که الان باقی مونده هستی مرکزیش اینه که شاید راهی برای کشتن دیو وجود داشته باشه نه با کشتن دارنده دیو. شاید راهی برای کشتن آز وجود داشته باشه که راهش خوشونت بر آزمند نباشه. شاید راهی برای کشتن خشم وجود داشته باشه، جدای از کشتن مرد خش kia. یک پیشنهاد عملیاتی دارم. که من خودم راستش چون میخوام بر سال آینده این کار بکنم گفتم بهتون بگم الان ایران ما راهبردهای متفاوت داریم برای که این کاری که الان خدمتون گفتم رو بکنیم ما چگونه ممکنه بر امر پلید قلبه کنیم بدون اینکه آلوده بشیم به امر پلید جمشید که الان استاد عزیزمون اسمش رو بردن میدونیم دیگه تحمورث که الان به روایتی پدرش و به راویات برادرش رو اهریمن می و اهریمنو رام کرده بود تحمورث اهورمس تحمورس رو به صورت یک اسبی رام کرد و سوارش میشد و توی گیتی به شهر به غرب میرفت تا اینکه اهریمن متوجه شد که از فلان بلندی که میخواد بالا بره تحمورس میترسه دیو یعنی یه چنگکی پیدا کرد توش و از اون بلندی بالا رفت اسب بود دیگه و تحمورس ترسید و از زین خودش پایینش انداخت و بلید تحمورس رو وقتی شما دیو درتون رخنه کنه رخنه میکنه می افتی حتی اگه سوار احریمن باشه و وقتی که افتاد میدونید ب بل... بلعیدش احریمن و جم جمشید رفت نجات بده برادرش رو و اون رو از توهی حالا دستش کاری نداریم. از توهیگاه احریمن بیرون کشیدش و دستش آلوده شد دست جمشید آلوده شد آیین برشوم آیین تطهیر که تو ایران هست رو به روایتی جمشید اصلا آورده برای اینکه دستش رو تطهیر کنه دستی که در توهیگاه احریمن فرو رفته بود لمس کردن دیو دیف زده میکنه آدم رو. سوار شدن بر احریمن حتی اگر واقعا سوارش بشی ممکنه قلابی درست کنه که احریمن رخ نکنه دارت این که من دارم میگم منظورم متافیزیکی نیست کاملا استعاری و ربانشناختی دارم حرف مزنیم کجاست که ما بازی میکنیم با عمرنا خوشاید بازی میکنیم با ترس بازی میکنیم با خش بازی میکنیم با آز ولی آلوده بش نمیشیم؟ میونن کجا این اتفاق میفته وقتی بازی می کنیم وقتی بازی می کنیم این اتفاق میفته بچه کی بازی میکنه خشمی ممکنه بشه ولی بازیه ادامه پیدا نمیکنه ممکن بترسه ولی بازیه ما اصلا خوشمون میاد ما میریم لونا پارک میترسیم ولی امنه ترس مجبار نیست بازیه ما میترسیم ما بازی میکنیم با هم دیگه خشگین میشیم رقابت میکنیم سر دیگه کلا بزنیم جر میزنیم ولی بازیه امن آلوده نمیکنه. گمان من این است که شاید شیوه ای برای قلبه بر مر ناخشاییان میخوام بگم خدمناتون شیهای برای فرش کرد میخوام بگم خدمناتون چند راه هست برای اینکه من بر خودم قلبه کنم چون فرش کرد در واقع اینه اگر هر کسی بر خودش قلبه کنه جهان گلستان میشه مشکین که ما هممون میخوایم جهان رو اصلاح کنیم همیشه من از دیگری شروع میکنیم یعنی من میخوام جهان درست شه، همیشه هم یهفر نشون میکنم میگم اول من به تو رو درست کنم حال بعدا ایشالله به خودم هم میرسه کش وقت نمی نوبتش همیشه من میخوام دیگری رو اصلاح کنم اونتا اگر من بخوام خودم رو واقعا دستکاری اگر من بخوام هستی رو با نقطه شروعی مثل خودم شروع کنم به نو ساختنش که تنها راه شرای دیگری نداره انگار وقتی بخوام یه کاری بکنم شاید راهش بازی کردن باشه شاید راهش این باشه که من نترسم از این که نکنه نشه بازی کنم باش بلکه شد شاید راهش این نباشه که من خشبینشم از خودم اگر نشد آه من باز خطا کردم فلان جا. شاید منوان بازی بهش نگاه کنم خشبین شدنم بد نیست دلی توی دایرهی نه خیلی جدی شاید من میل به این که فلان کار انجام بدم به فلان چیز برسم فلان جور باشم فلان جور هستی رو دگرگون کنم اگر خیلی جدی گرفته بشه شاید آزمندانه باشه شاید حریصانه باشه شاید من اگر در والو بیک بازی بهش نگاه کنم بهتر باشه دوستان میدونن که یه چارشوب نظری هست تو همین جمعی که پیش دوستانی که اینجا هستن، بهش میگیم زروان. دلیل اینکه دستگاه نظری خیلی مدرن نظری سیستمای پیچیده است، اصلا ربطی به بحث اسطوره‌شناسی خودمون نظریه نداره. من این دستگاه نظری اسمشو گذاشتیم زروان چون زروان یعنی زمان. چون زمان توش مهمه و دوستان نوروز یه اسطوره زمانه و فرشگرد یک امر مربوط به زمانه. فبگو یا من که میخواد خودش رو دگرگون کنه زمان خودش رو دگرگون میکنه و یا بازی چنین میکنه بازی زمان رو دگرگون میکنه بازی زمان بیکران تولید میکنه زمان خطی رو میشکنه آن زمانی که زیر سیطره دیگریه رو میشکنه زمانی درست میشه که بین من و منه و به این خاطره که دلپذیره به این خاطره که ما طور زندگی میکنیم لذت میبریم و همه چی رو کنار هم دیگه میتونیم تجربه کنیم دوستان پنج سال مونده تا سال 1400 پنج سال مونده که قرن جدید چه شه ما خیلی دوره خوبی داریم زندگی می کنیم چند نفر مشناسین یه قرن جدید دیده باشن؟ پنج سال دیگه مونده و قدیم معتقد بودن که اتفاق شبیه نوروز سر قرن هم افته و سر هزار هم می افته و این چرخه ایه که از قدیم داشتیم یه چیزی من از شادروان اردشیر بابکان یاد گرفتم و اردشیر بابکان مسعودی توی یک چیزش توی یک روان شاد باشه چون اینی که میگم واقعا حوشمندان از کاری که بگم مسعودی توی یکی از در واقع تاریخ که نوشتم میگه که من از یک موقعی در فکر میکنم اصفهان یک رازی رو شنیدم که قرنها بود هیچ کس نمیدونست و فقط این میدونست و به من گفت و اون راز این بود که اردشیر باباکان وقتی تاریخ ایران میخواستن تدویم کنن گفت حالا اون آدمی که قرار رو تدویم کنن گفت آقا دیویست و چه سالشو ب... دیویست و سالشو بزنید دیویست و سال بریدن از تاریخ اشکامیان تاریخ اشکانیانم ماشاءالله هزار ماشاءالله طولانی ترین دوره تاریخ کلا سلسله های کل کره زمینه دیگه یعنی طولانی ترین سلسله ای که توی همچین مساحتی بیش از 500 سال حکومت کرده دوره اشگانی اشکانیان هستن نشد خیلی غیر عادی امس اینی که و خورده سخوردی زدن باز خیلی فرق نکرده تازه شده اندازه دوره اخامنشی مثلا و چرا ولی این کار کرد چون که ارشید بابکان ادعا میکرد که ناجیه بردش رو با وکان این کار کرد که بگه که هزاره نو داره شروع میشه 23 خورده ای سال بزنی میشه سر هزاره از دید آدمایی اون دوره کاری نداره. میخوام بهتون بگم که دوستان جیر میشه زد شما میتونیم بگیم 5 سال دیگه هزاره شروع میشه حتی میتونید بگیم دو هفته دیگه هزاره شروع میشه پس بیاین بازی زوربانه رو شروع کنیم کنی. ممنون.